به نام خدا کتاب داستان های یوگوسلاوی نوشته نادا چورچیا پرودانویچ مترجمان کامیار و مهیار نیکپور ارائه شده توسط کانال تلگرامی هزار افسان داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده اعظم گرایی با سلام به مخاطبین کانال هزار افسان، امیدوارم حالتون خوب باشه، داستانی که بهتون میخوام تقدیم کنم از کتابی هست که مشخصاتش ذکر شد، به نام پری کوچک یکی بود، یکی نبود، غیر از خدای مهربون، هیچ کس نبود در روزگاران دور پادشاهی بود که یک پسر داشت و شاه و پمسرش خیلی این پسر خودشون رو دوست داشتن وقتی پسرشون به سن بلوغ رسید جشن بزرگی برپا کردند و تمام مردم کشورشون رو از نقاط مختلف به این جشن دعوت کردند و تمام کاخ رو با طلا و سنگهای قیمتی تزیین کردند و به آشپسهای کاخ دست دور دادند کلی غذاهای خوشمزه و شربت‌های گوارا آماده کنند تا از میهمانان پذیرایی کنند و کاخ رو با شمهای قشنگ، نورانی و چراغونی کردند و کلی موسیقی‌های دلنواز پخش کردند. و وقتی هم که شب شد و محتاب تمام آسمون رو فرا گرفت مهمانان رو به باغ کاخ دعوت کردند و مهمان همه دسته دسته به باغ کاخ اومدن و از زیبایی های گل های سرخ و زنبخ که اطرشون اونها رو بیهوش و سرمست می کرد لذت می بردن. و نوازندگان آهنگهای محلی می و دختران زیبا با اندامی باریک قشنگ می و پایکوبی می کردن. این جشن و پایکوبی تا نیمه های شب ادامه داشت و وقتی که نیمه های شب رسید میهمانان دسته دسته کاخ رو ترک کردند شاهزاده قسطه ما که خیلی خوشحال و شاد بود از این جشن بعد از پایان جشن تصمیم گرفت تا در باغ کاخ قدم بزنه و از زیبایی ها لذت ببره همونجور که قدم میزد، رسید به زیر درخت پرتقال که ناگهان دختر کوچک و زیبایی رو در برابر خودش دید. این دختر لباس طلایی رنگی به تن داشت که پر از منجو و ملیل بود لباسش و موهای قشنگ و بلندش رو با تاجی از نگینهای زیبا تزئین کرده بود. شاهزاده اول پیش خودش فکر کرد که داره خواب و خیال میبینه به خاطر همین جلوتر رفت که ناگهان دید دختر بهش گفت سلام ای شاهزاده مهربون من توی میهمانها بودم و داشتم جشن شما رو تماشا میکردم اما اونقدر ظریف و کوچیک بودم ترسیدم با دخترا شروع به رقص و پای کوبی کنم به خاطر همین موندم تا شاید شما رو تنها ببینم و به شما تعظیم کنم و براتون آرزوی خوشبختی بکنم پادشاه که از دیدن این دختر زیبا و ظریف که شبیه عروسک های کوچولو بود خیلی شاد و مسرور شد و به دختر گفت که تو چقدر قشنگ و زیبایی شبیه این عروسک های کوچولو میمونی به خاطر همین پادشاه دستش رو دراز کرد تا دست این پری کوچیک رو بگیره اما دختر زیبا خجالت کشید و عقب عقب رفت و ناپدید شد و فقط دستکش کوچولوی تو دستهای پادشاه یا شاهزاده کوچک قسته ما باقی موند شاهزاده نگاهی به دستکش کوچیک انداخت و دید که اون دستکش انقدر کوچیک و زیبا هست که فقط به اندازه انگشت کوچیکه دست شاهزاده است شاهزاده از دیدن این پری کوچیک خیلی خوشحال شد. روزها و شبها به باغ می تا شاید دوباره این پری کوچیک رو ببینه چون خیلی از این پری کوچیک که شبیه عروسک های قصه ها بود خوشش اومده بود. تو یکی از این شبهای محتابی که شاهزاده کوچک به باغ اومده بود دوباره زیر درخت پرتقال این پری کوچک رو دید و با پری شروع به قدم زدن در درباخ کردند و با هم حرف می زدند و می خندیدند روزه می گذشت و شبهای محتابی شاهزاده قصه ما این پری کوچک رو میدید. و اما این پری کوچک به سرعت رشد میکرد و بزرگ میشد تا اینکه پس از مدتها همقدر و اندازه شاهزاده قسته ما شد و شد اندازه شاهزاده، فروزگار خوب و خوشی رو با هم سپری میکردند در یکی از این شب شاهزاده به پری قصده ما گفت که ای پری زیبا من دیگه نمیتونم دوری تو رو تحمل کنم دلم میخواد همیشه در کنار تو باشم و تو کنار من پاشی من میخوام با تو ازدواج کنم پری به شاهزاده گفت ای شاهزاده منم تو رو دوست دارم و دلم میخواد با تو عروسی کنم اما یه شرط دارم شاهزاده گفت چه شرطی؟ هر شرطی که داشته باشی من قبول می کنم. پری گفت شرط من اینه که تو همیشه منو دوست داشته باشی و دلت فقط با من باشه و هیچ وقت با هیچ کس دیگه ای ازدواج نکنی و دلت رو به هیچ دختر دیگه ندی. شاهزاده ی ما قبول کرد و قول داد و سوگند وفاداری خود. فردای اون روز شاهزاده به پیش پدر پادشاه و مادرش رفت و به اونها گفت که تصمیم به ازدواج داره پادشاه و همسرش هم که خیلی پسرشون رو دوست داشتن قبول کردند و سه روز بعد پری قصه ما و شاهزاده با هم ازدواج کردند هفت سال از این ازدواج گذشت پری زیبا و شاهزاده جوان زندگی بسیار خوب و خوشی رو در کنار هم گذروندن و خیلی دوران خوبی رو سپری کردند. بعد از مدتی پادشاه مرد و به مردم اعلام کردند که دسته دسته برای تشییع جنازه و دفن پادشاه از تمام نقاط کشور بیان مردم هم دسته دسته در روز معود برای دفن فادشاه فوت شده اومدند. در روز دفن پری ما دست در دست شاهزاده جوان در مراسم تشییع جنازه پدر شاهزاده شرکت کردند. در میان مردم دختر موسرخ بسیار زیبایی بود که شاهزاده وقتی چشمش به این دختر موسرخ افتاد حال خودش رو نفهمید و بسیار شیفته و فریفته این دختر موسرخ شد و در تمام مراسم تشییع پدرش فقط چشمش دنبال این دختر موسرخ زیبا و فریبنده بود پری زیبا که دست در دست شاهزاده جوان داشت متوجه این حالت شاهزاده شد و بسیار غمگین و ناراحت شد. در جایی بود که پادشاه حتی متوجه نشد و نزدیک بود زمین بخوره و رو کرد به پری و گفت که من داشتم زمین میخوردم. پری گفت ای پادشاه پیراهن من زیر پای شما گیر کرد و شما نزدیک بود زمین بخوری انقدر پادشاه متهوش این دختر مو سرخ شده بود که متوجه نشد پری داره کوچیک و کوچکتر میشه و به خاطر همین لباسش زیر پای پادشاه گیر کرده بود بعد از مراسم تشعی و دفن پادشاه، حالا شاهزاده ما پادشاه کشور شده بود. و اون دختر موسرخ هم همراه پادشاه و مادر پادشاه به قصر اومد و پادشاه دیگه پری رو فراموش کرد و درگیر رو عاشق و شیدای این دختر موسرخ شد. به حدی که اصلا متوجه نشد پری قصده ما ناپدید شده و اصلا از ناپدید شدن پری ناراحت نشد. به ترتیب حالا شاهزاده که پادشاه کشور شده بود با این دختر مو سرخ زیبا ازدواج کرد و برای بار دوم جشن عروسی برپا کردند در قصر. اما این عروسی و ازدواج سه روز بیشتر دوام نداشت چون این دختر موسرخ زیبا که حالا همسر پادشاه و شهبانوی قصر شده بود تغییر رفتار داده بود زنی بسیار پرتبقه بود و از پادشاه توقع جواهرات قیران قیمت داشت و هر روز به پادشاه دستور دور میداد و میگفت که یک چیز جدید و یک جواهرات جدید و یک وسیله گرون قیمت برای اون بخره و دیگه اون دختر مهربون و قشنگ نبود به حدی که پادشاه رو بسیار غمگین و افسرده کرد و پادشاه یاد پری خودش افتاد و افسوس خورد که چرا اشتباه کرده و خطا کرده و دل پری رو شکسته و حالا پری ناپدید شده شروع کرد به قصه خوردن و به خدمتکاراش دستور داد این زن مقرمز رو از کاخ بیرون کنن و بهش گفت که از کاخ برو بیرون و اگر دفعه دیگه تو رو ببینم دستور مرگ تو میدم و حالا پادشاه تنهای تنها شده بود و قصه میخورد شبهای محتابی به باق میرفت و قدم میزد تا شاید دوباره پری خودش رو ببینه اما افسوس و هزاران افسوس پری نیومد و گذشت و گذشت سالیان طولانی گذشت و حالا پادشاه موهای سرش سفید شده بود اما هنوز عاشق پری بود و شبها به باغ میومد تا شاید دوباره در یک شب محتابی پری خودش رو ببینه اما افسوس و هزاران افسوس که دیگه هیچ وقت پری پیش پادشاه بر نگشت امیدوارم که از داستان پری کوچک خوشتون اومده باشه سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها قصه هایی از غول ها و کتوله ها